خب، ببینید مسئولیت استراتوژیستا ها در سطح سازمان، در راستای مدیریت استراتژی، سه مسئولیت رو اون دردارن، یعنی مدیران شرکت ایجاد، یک بستر برای تغییر یعنی ما مشکل اصلی که تو شرکت ایرانی داریم اینه که آقا تغییر پذیر نیست، یا مقابلت در مقابل تغییر میکنن و تجربه به من نشون داده که قضیه رو بعد خیلی مون دایالوب جواب نمیده، خیلی مونولوژ خب؟ دو، ایجاد تعهد و احساس مالکیت مدیریت استراتژیک بدون استفلویلتی قابل اجرا نیست یعنی وفاداری پرسونل و احساس مالکیت پرسونل به سازمان که منجر میشه ما بتونیم برنامه های رو در سطح سازمان خیلی اثر بخش و کارا اجرایی بکنیم سه ایجاد توازن بین صبات و نوآوری همه فکر می‌کنن نوآوری خوبه خلاقیت خوبه ولی نوآوری و خلاقیت بیش از اندازه در سطح سازمان منجر به شکست سازمان هم میشه شما از یک طرف بعد داشته باشیم، از یه طرف باید نوآوری داشته باشیم یه،, یه توازنی بین این دو تا در سطح سازمان باید برقرار باشه قصدی بستر یعنی چی مثلا این مثال میشه بزنید بستر رو تماما رو کنید یک فرهنگی رو در سطح سازمانت فرهنگ رو در سطح سازمانت ایجاد بکاری که پرسنل قزیلای تغییر بشن متوجه هستید ببینید عرض کردم من تجربه و من نشون داره در رابطه با این قضیه خیلی از موارد مونولوگ یک طرفه باید بست در محیط ایران در بازار ایران چون ما ایران نه مذاکره نیستیم، اهل تعامل نیستیم و مشکل اصلی که در شرکت ایرانی داریم اینه که مقاومت ایرانی نشون میدن نسبت به تغییر سازمانی که تغییر پذیر نباشه و مقاومت در مقابل تغییر نشون میده عملا شما سرد استراتژیک در سازمان اجرایی نخواهد شد یا تره تجاریتون در سطح سازمان اجرایی نخواهد شد خب بریم یه کیسی رو با هم مطالعه بکنیم یه کیسی رو یه, تس... یه نتیجگیری ازش بکنیم یه داستانیه. به طبق آمار مجله فورچن که چند سال گذشته در آمریکا یه کیسی رو انجام دادن، یه متعالیه رو کردن کمتر از ده درصد استراتژی که خوب تدوین شده اند خوب اجرا شده اند و بیش از نوت درصد شکست در شر... اجرای استراتژی خب مجله فورچن کیسی رو انجام آمریکا، اه... 90 در آمریکا که نوت درصد شرکت ها در آمریکا در اجرای استراتژی ناموفق بوده و فقط 10 درصد موفق بوده تو آمریکا بالای حالا داستان چیه 68 درصد از مدیران ارشد اعتقاد دارن اینم از باز از مجله فورچن اومده 68 percentage of top managers a better translation of strategy to action would improve operation income by 20 percentage مدیران ارشد 68% از مدیران ارشد اعتقاد دارند که اگر شما یک ترجمه خیلی خوب، روون، قابل فهم از استراتژی، در سطح سازمان داشته باشید 20% درصد باعث پیشرفت در خروجی ها میشید ما مشکل اصلی را که بعضا تو شرکت ها داریم اینه که میانیم یه سند استراتژی که خیلی گردن می مینویسیم خب کسی نمیفهمید؟ وقتی چیزی نفهمن اعتقادی هم وجود نداره در نتیجه اجرا نمیشه مثلا فرض بفرمایید حالا میرسیم بهش من فقط این ادنس داخل پرانتز دارم خدمتتون میگم مثلا فرض بفرمایید ما تو سرن استراتژیک می بهبود ارتباط با تامین کنندگان خب اینو مسئول خرید نمیفهمه نمیفهمه چون ما این نمونهشو تو سازمان داشمون بهبود ارتباط با تامین کننده تو باید ارتباط با تامین کننده بهبود به بود پیدا بکنه یعنی ما اینو به یک زبان ساده ترجمه میکنیم میگیم آقای ایکس چقدر خرید ماه گذشته داشتی مثلا میگه 100 میلیون تومان میگیم از این 100 میلیون تومن خریدی که ماه گذشته داشتی چند درصدش در حقیقت داد شده و دوباره به تامین کننده بازگردونده شده یعنی خرید مشکل دار بوده مثلا میگه چند میدونم 10 درصد یعنی 10 میلیون تومان. بعد 90 میلیون تومنش اوکی بود. 10 میلیون تومنش اوکی بوده. اینو می‌فهمه. ما می‌گیم منظورمون از بک ارتباط با تامین کننده همینه. خب؟ و بحث اصلی که ما تو سند استراتژیک داریم دیدی اینجا که لغات قلمب سلومه نوشتیم؟ ما تو فانکشنال استراتژیز یا تو همین BSC بالعرض اسکور کارت کارت ارزیابی امتیاز متوازی میای یه ترجمه ساده برای نفرات برای افراد در سطح سازمان انجام میدیم. که بفهمن حس داشته باشن تا بتونن اجرا بکنن بیزنس استراتژی از داست سنگر ایشو استراتژی در کسب و کار استراتژی یکی از مفاهیم فوق العاده مهمه بنظر هر کس 90 درصد شرکت ها در پیاده سازی استراتژی خود با شکست مواجه میشن در آمریکا مسلماً در ایران بعد عددش خیلی خیلی خیلی بیشتر باشه صدقی. فکر میکنید دلیل اصلیشه چرا ما استراتژیامون در حالا نمیگم امریکاس کلا در اجرای استراتژی موفق نیستیم ببینید اگر استراتژی درست اجرا بشه یعنی این حیدر درست اجرا بشه مسلما شما به چشم انداز رسالت میرسید باعث دهبود در سطح سازمان میشه به مزیت های رقابتی میرسید یعنی میشه بهش دیگه میشه مدينه فاضله چرا استراتیژی ها در سطح سازمان ها با شکست مواجه میشه نظر شما چیه اجرا خب من میدونم چرا من فکر میکردم بیا اینکه شفاف نیست و کسانی که باید مجریانی که باید اون تغییر رو اجرا بکنن احساس امنیت نمی‌کنن از اجرای اون تغییر. دیگه نظر شما چیه؟ من فکر می‌کنم که رو لازمو نمی‌ذارن. دیگه من فکر برام که بیشتر هم کارمنده و مثلا کسایی که توی شرکت کار می‌کنن با تغییر زیاد نمی‌کنن کنار بیان. کلاً با تعمی مقاومت می‌کنن بیشتر آدمو. دوستان همون روال عادی رو بره، همون روالی که همیشه می‌رن همون رو برن. تغییری ایجاد ناد دوستان برن. ببینید زرف دل ببینید این در آمریکا منوانه تمامنده شده خب گفته دلائل شکست در اجرای استراتژی به چهار, به چهار دلیل چهار تا علت وجود داره که استراتژی ها شکست میکره تو اجرال یکی چشم سازمانیه پرسونل، چشم اندازه نمیفهم و اعتقاد یا مثلا تا چشم نداره چون در منافع سهیم نیسته آره، اصلا اصلا یک چه فیلم ما شعری رو گفت اصننگ، داشه هستادرن شده چشم انداز. هی مامی بی‌بود مستم، نمی‌فهمن. یا بقول شما سنس آف ریسپانس، اون احساس مالکیت رو ندارن. ببین احساس مالکیت خیلی مهمه. خیلی اهمیت داره. من دوس پیش ما تو وایبل خب گروه‌های مختلف داریم دیگه. گروه شما هم هست، من می‌بینم. تو شرکت هم یه گروهی تشکیل شد. مدیران بودن، سرپرستا بودن. من زیاد واقعیت همش تو وایبر تو نمیشم یعنی یه اسکیم اسکن میکنم. همین سه چهار شب پیش بود نشستم میگویم که اکثر مسیج هایی که تو وایبر گروه ما تو شرکت زده میشه بین ساعت نو حساب تا چهاره <تصفيق> <كتضیح> <تصفيق> ساعت یازده شب، دوازده شب، تا مادر خانم ما بودن یازده شب، دوازده شب صبح من جلسه چیز بود، قیعت مدیره داشتیم. زن به راننده گفتم آید دهقان صبح ساعت 6 و نیم صبح دار خونه من باش از اون صبح زنگ زدم هشت صبح جلسه یادجور گفتم من نیمی رفتم کارخونه بعض من بعضی آمپر میچاسم دیگه آت کنترل می‌شم رفتم کارخونه راحت شما رفت رو که پایین مدیر کارخونه رو مدیر تولید رو کشوندم شما نمی صبح تو خجالت شما نمینکشین حالا بعد گروه دوستدار است گفتم شما غلط کردی مثلا رو دارید میکنی گروه دوستانه یعنی چی شما هشت تا تا 4 برابر که وقتی پیکاری. از ما نمیدونی داری به من داری میگی من درست اصل فایبر کسی که وارد این فضا میشه ذهنش درگیر این میشه احساس مالکیت ما متاسفانه تو ایران احساس مالکیت دیم. حالا من یکی از دلایل عدم اجرای استراتژی دید مدیرامله دید مدیرامل سازمان دید مدیریت سازمانه اینی که آقا اعتقاد به استراتژی نداره اصلا ببخشید من مدیرامل در طول ماه چند ساعت وقت برای مباحث استراتژی میذارم چقدر اهمیت میدم به مباحث استراتژی اصلا تو بودجه سازمانیمون در ابتدای سال شما بحث بودجه کردی چقدر رقم، چند ریال چند تومان در اتاق ما با بحث استراتژی پیش بینی مالی کردی وقتی شما اهمیتی ندید خب استراتژی ها اجرا نمیشه شماره سه، منابع مالی خب بله ما مشکلات مالی که داشته باشیم مسلما تاثیر در اجرا استراتژی هم میذاره بحث میشه موابس در استراتژی ولی وقتی من مشکل پرداخت حقوق داشته باشم اول میرم تن منبع برای اون وظیفه میکنه بعد میرسه به مباحث استراتژی و بعدم نیروی انسانی ببینید تقسیم بندی که انجام شده به این صورته این بالا امریکا است تنها 5 درصد از کارکنان چشم انداز رو درک میکنه و 95 درصد درک نمی کنه 95 مدیران هستند حالا ما خیلی خوشبیران هم داریم منابع انسانی آن ها مستو درصد از کارکنان ارتباط موثری با استراتژی ها برقرار میکنه. حس داره نسبت به استراتژی کارمندی نیستن. خب؟ برنامه مالی 60 درصد از سازمان ها بین بودجه و استراتژی خود ارتباطی برقرار نمیکنه. یه بودجه داره برنامه‌ریزی مالی ولی اصلا بحث برنامه‌ریزی استراتژیتون بودجه دیده نشده. ما مدیران 85 درصد مدیران ماهانه کمتر از یک سال درباره درباره استراتژی اصلا بخص نمی‌کنم و این خیلی بده خیلی خیلی میدونی من خودم یه مشکل و معزلی رو که دارم توی محیط کار خودم lack of understanding مثلا هیت مدیره ما باید بیزینس پلن داشته باشیم دیگه ما سالانه خود بیزینس پلن رو میدیم بچه‌ها تحیه که من کمیته استراتژی دارم حالا الحمدالله کمیته استراتژی هم که تو شرکت ما تشکیل شده افراد فوق العاده خبره توش هستم، مثلا هدی استراتژی استراتژی رو خیلی خوب بلده چه واسه از خود منم بهتر بلده خب میان طرح تجاری در میارن ما مثلا میینه اینو پرزنت میکنیم میبینیم او هیچ کس هیچی نمیفهمه اصلا نمیفهمه اصلا حس نداره دید نداره خب اگه هیئت مدیره نسبت به استراتژی حس نداشته باشه دید نداشته باشه هی اجراش چه میدونم خب با مشکل مواجه میشید ما بحث توسعه میکنه میکنیم میبینیم اصلا دید ندارن بحث مدیریت حزینه رو میگو با اصلا هیچی ازه نمیدونه اصلا وارده دضاییو نمیشن با, با, چی با چی کار کرد؟ جام؟ با چی کار کرد؟ تو چون من دقیقا همین مشکله دارم ام. یه تئاتر مدیریت فرحی احساسیه، آیا باز اصلا نیازو در دل اونها ها بازرگانیه با شرکت من بازرگانیه ولی هیچ تفکر اقتصادی ندارم خب این واقعا موزله دیده مدیرانه خیلی این مثلا من اینو کلامم تو کمیته پی ما تشکیل بدیم خب من کمیته استراتژی که مثلا مسئولیت و وظیفه همین همیناست داره من خودم تو این جلسات شرکت نمی کنم وقتی وقتش واقعیتم روش ندارم و این بدم هست خب من میدونم صورت جلسات که میاد 90 درصد شلوغ اصلا بعضا مباحث غلط مورد برسه قرار داده میشه ولی پافشاری فشار می که ماهانه که بعد یک بار این جلسه تشکیل بشه حتما تشکیل بشه با صورت جلسه ارسال بشه. این یعنی فرانسه. شما 100 درصد امپروومنت نمیتونید داشته باشید. 10 درصد، 15 درصد، 20 درصد هم میتونید داشته باشون یعنی موفقیت. پیگیری، فقط و فقط پیگیری. این واقعا مشكله. پیگیری، هیچ بر من یه مثال ساده دیگه برای شما بزنم. آقا نیروی انسانی کار نمیکنه. راحت. معارف فردا یعنی شمشیرم از رو بستن. برم دفتر مرکزی این مسئول دفتر ما یه 20 سال مسئول دفتره 20 ساله از یعنی تخصصش مسئول دفتره آقا بله یعنی من اون روز تایم شیتش رو گرفتم طول ماه گذشته این خانم ده روز ایمرجنسی لیف بوده ده روز ایمرجنسی لیف بوده صبحم بلند میشم اس ام و میذارم من مریضم نمیتونم نرسام خواهم فردانم بهش بگم، بگم،, بگم. بخواهم تو بیری قشن بریش تو خونه تمام دفتر دسته کنم برنی تو کنترلی تو ریموت کنترل رو کنم بخواهم کشناده بهش بدن پاشم باید میستم، ببین نیروی انسانی کار نمیکنه لام سبا کار نمیکنه ولی با پیگیریه من مولیمیتی هر روز صبح دارم، هشتانیم صبح ما ساعت کارمون هشت صبح ساین اینمون هشت صبح ولی خب ما یه قبول برای دوستان یه استون گذاشتین گفتم آقا بین 8 تا 8:30 صبح کار بشه دیگه نیم ساعت فلیگسیبিলিتی گذاشتیم دیگه ان اضافه چیزی. خب ولی 8 تا 30 دقیقه با مورنینگ میتینگ استارت می جلسه صبحگاهی استارت میشه و خود من تو جلسه صبحگاهی هستم. هی آقا 8 تا 30 دقیقه بود تا رفتم اومد تو 8:35 دقیقه 8:40 دقیقه دیدیم نمی‌شه اینجوری. یعنی من 20 بار به اینا تذکر دادم. برش گردونید. گفتم آقا دیگه 30 دقیقه رخص ساعت هشت هستام کار،, کار شروع میشه. هشت تا یه دقیقه هم اومده ظرف سه سه بار تاخیر داشته باشی؟ تا سه بار اوکیه ولی چهار بار بشه چهار روز من قیبت رد میکنم بعد داریم همه دارم به این مشکل فرهنگیه و من رسیدم به این داستانفی مشکل فرهنگی تو سازمان ها با جدیت با پیگیری تو سازمان‌های ایرانی ما از, از طرف ما تو سازمان‌ها میگیم دیالوگ باشه باید تو سازمان‌های ریم تو 80 درصد موارد بعد مونولوگ قضیه رو بری بریشون <تصفح> چون ما مشکل داره جانم واسه متأسفانه که فکری هم که میشه باشه آره, آره آره آره میتونه با اون کانسپت هم تعریف بشه از همونه, همونه آره به نوعی همونه خب دقیقا همین داست. اگه میخواد در قالب استراتژی باشه همین موارد بحث بشه. مسلسه باید بحث بشه خب آقای دراکر جمعه که همه شما خونید وان gets, gets چیزی که اندازه گیری میشه انجام میشه و برای اجرای استراتژی و برنامه ریزی استراتژی باید اندازه گیری کرد دقت کنید ما تمام داستان را که تو این مسلس داریم اندازه گیریه ما میخوام اندازه گیری کنیم و بعد بیایم برنامه ریزی و اجرا براش انجام بدیم. بله فلسفه مدیریت استراتژیک خیلی خلاصه توی این سلاید گفته شده ما در مدیریت استراتی، این سال کده دکات کنیم دوستان این سال کده دکات کنیم ما تو مدیریت استراتژیک برنامه ریزی داریم مانیتورینگ داریم کنترل و اجرا. مزید میخوام برنامه ریزی اجرا و کنترل برنامه‌ریزی اجرا و کنترل برنامه‌ریزی اجرا و کنترل سه کانسپت اساسی در بحث مدیریت استراتژیک خب در استراتیج مانجمنت فلسفه مدیریت استراتژیک چی میگه خیلی ساده حرکت دائشمنداس سازمان باید حرکت بکنه داینامیک باشه متوجه به قول معروف یا ببنامه های نیلسون روز به روزش متغیر باشه، متفاوت باشه و روی کرده برنامه ریزی تعاملیه برنامه ریزی تعاملی یعنی چی؟ شما اجرای استراتژی رو بدون نگاه به محیط بیرونت نمیتونی اجرا بکنی، پس های نگاه به محیط بیرون داشته باشی تعامل با محیط بیرون داشته باشی تا بتونید اجرا بکنید در بحث مدیریت استراتژی بله ما در بحث مدیریت استراتژیک تمام هدفمون اینه که از وضع موجود حرکت بکنیم به سمت وضع مطلوب یعنی همون بحث چشم انداز. خب حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب حالا یک سؤالی ازتونم تو مدیریت رو توی بحث برنامی ریزی رو مهم کردیم؟ فرق برنامی ریزی با استراتژی حالا چی بگید؟ قرار مدیریتی برای کوتاه مدت. در طول یک از فانکشن‌های مدیریتی برنامه‌ریزی بود دیگه درسته؟ کوتاه مدت اما استراتژیک کاری بود آن موقع. تا با خودت. فرق استراتژی با برنامه‌ریزی ستون برنامه‌ریزی که ما تو مدیریت بحث کردیم، استراتژی هم تو این ستونه. تعریف استراتژی مثل برنامه‌ریزی می‌مونه. عاده من یعنی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب استراتژی یعنی حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب ولی تفاوتی که این دو تا کانسپت با هم داره استراتژی بلند مدته افقش بلند مدته یک سال از حداقل حد دو سال است ولی یعنی عملیاتی مدت زیر یک ساله حداکثر یک ساله یک سال است یه مثال برای من یه مثال از برنامه‌ریزی بزنید یه مثال, بزنید. یه مثال از استراتژی بزنید بگید استراتیجی، هم. کاهش حزینه ها آه،, آه، ببین، کاهش هزینه در ساعت سازمان میشه استراتژی مثلا یه مثلا برنامه ریزی بزن برنامه ریزی؟ چون کاهش هزینه یک سال، دو سال ممکن زمان ببره یک... کار یکی دو روزه نیست برنامه ریزی همون مثلا اون ساعت که شما تنبیر دارده نمیشه میشه برنامه ریزی. ولی اخلاف کار لیافه که میخواهد مخواهد این میشه برنامه‌ریزی مثل مثلا فرض بفريد برنامه تولید برنامه تولید الان وایده برنامه‌ریزی ما برنامه ماهانه به تولید میده این میشه برنامه‌ریزی مثلا ما امسال ببینین خب چن و کالا رو وارد کردیم برای سود برای کار این میشه برنامه‌ریزی ولی هدف استراتژی اصلیمون برند سازیمون این استراتژی خرید مصنوعاتون میشه خیلی میشه برنامه‌ریزی خب دقت کنید ساعت مدیریت دارید استراتژی مدیریت ارشد باش درگیره عالم منو نمیذاره میانی عملیاتی استراتژی تصمیماتش بنیادی یعنی اگه شما تصمیم اشتباه تو استراتژی بگیری دودمان سازمان به باد میره این من واقعیت دارم بهتون میگم ما. دودمان سازمان به باد میره الان من همین دو هفته پیش تو جلسه هیئت مدیره باستم سفت اینا میخواستن برن یه سری دستگاه بخرند. بخرن بالای 2 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنن بعد از من مدیر عاملن پول میخوان دیگه که دستپچی نمیشن گفتم من نمیخوام تو اگه میخواد خودتون بیاید پول واسات بزرید برید بخرید دستگاه بخرید ولی از بودجه جاری از مطالبات شرکتی که هر ما قرار وصول بکنیم من به هیچ اموالی من از چیزی واردش چون رفت. تصمیمات بنیادیه. اشتباه یعنی ما حساب داریم مشکل نقدی نه که دستگاه بخرام و سر می‌خورم اصلا خیلی ساده. بله. ولی عادیه شما اگه اشتباه تو برنامه‌ریزیه برنامه ریزی تاکتیکی عملیاتی داشته باشه اتفاق نمیفته تأثیر خاصی تو سازمان نمیذاره میذاری میاد به اطلاع درتی با استراتژی مفصل و دقیقه ما برنامه ریزی استراتژی به کردم کسی انجام میده که استراتژیست باشه یعنی واقعا دید نسبت به سازمان داشته باشه بدونی؟ ولی نه برنامه ریزی محدود خب؟ بله تمرکز استراتژی روی مموریات و مسیر حرکت سازمانه، تمرکز برنامه‌ریزی ریزی اینه که چجوری ها در سازمان اجرایی بشه خب بریم تعریف مدیریت استراتژیک رو یه کامل تر داشته باشیم تعریف آیان هیت و آرلنده م... بله مدیریت استراتژیک علم و هنره هم علمی هم هنریه تدوین و اجرا و عرضی به تصمیمات وظیفه چند موزه یعنی باید تصمیمات کلانی که در سطح سازمان گرفته میشه که سازمان رو به سمت اهداف بلند مدت حرکت بده این میشه تعریف مدیریت استراتژیک تعریف کامل مدیریت استراتژیک یعنی حرکت سازمان به سمت اهداف بلند مدت بر اساس اجرا ارزیابی و تدوین و تسلیمات چند وظیفه‌ای که علم و هنر پشتشه خب سوالی هست گلیات رو گرفتید؟ خب وارد بحثمون بشیم حالا من مباحثی که الان خدمتتون گفتم مباحث اولیه یه سر تئوریا در تا با مدیریت استراتژیک بود اوکی بریم سراغ دیگه کم کم وارد بحث سند استراتژیک بشیم خب ببینید از اینجا به بعد هر مطلبی رو که من به شما میگم پله به پله در راستای نوشتن سند استراتیجی کتون به کار برده میشه پله به پله خب؟ پله اول مزیت رقابتی مزیت رقابتی خب؟ ما در پله اول از سند استراتژیک باید مزیت رقابتی سازمان رو مشخص کنیم اصلا بدون وضعیت سازمان تو رقابت کجاست؟ وضعیت سازمان از نظر رقابتی کجاست؟ اول که طریقه رقابتی داشته باشید مزید رقابتی، شرکت، تنها در صورتی در بازار دوام می آورد و سود می کند که در زمینه یا زمینه های بهتر از رقبه ها عمل کند و نیاستای مشتریان رو برطرف سازد ممکنه ازا من این سال از شما بکنم شما تو چه زمینه بهتر از رقبه هستید؟ تا اله تحلیلش کردید؟ چرا فکر میکنید که بهتر از رقیبتون دارید عمل میکنید؟ نکته اگر بهتر از رقیب ما نباشیم یعنی در زمینهای یا زمینه بهتر از رقبا عمل نکنیم شکست خوردیم یعنی شک نکنید که شکست میخورید شک تو این قضیه نداشته باشید چون تو هر بیزینسی که برید حالا ممکنه صاحب اون بیزینس ندونه مزیت رقابتی چیه ولی اینو خیلی خوب میدونه که یه من باید بهتر از رندوام عمل کنم دیگه الان پدر من چیز داره مانتو فروشی داره تو تیراژ نوشته که کالای فروخته شده پس گرفته میشوت نمیشه پس گرفته نمیشواید چرا میگید بله چون گفتم پس گرفتن این مزیت رقابتی یکم رابطه <تصفح> <تصفح> مانتو <میتر. تصفح> آره اسمش هم متر اندازه گیریش جه؟ این گرفتم ازش ملجنه همچنان پاید کار درستش هم بره آسو درستم آدم نه نامور اوکیه اوکی ولی خانوم من ارزش خرید نمی کنه خوشش نمیاد از طرحش ولی اوکی من حالا من اصلا خانوم خوشش نمیاد به تراشش اوکی حالا نزدیک این طرفوره هنو استیکسان تیروشه به جده میگی؟ <تصفح> یه اسم مانتومتشه ایشون که نمیدونست نه بیشتر موادها بودشته بوده آره بیدونم اون هم بای من طبقه اول مانتومتر مشخصه بزرگ موادر مشخصه هم که وارد میشی سمت راست هر پیدا میخوره چند تا میره بالا باید؟ نه اصلا بپرسید میگنم مانتومت که از سونا برو مچونم آره همه کلیم برو معرفی کن خودتا بگو من داماده بگو من از طرف داماد های مصدقی، دانشی داماد های مصدقی، نگاه ترفید داماد های مصدقی کنم بگو من نه ریزایی، نه داستان، نه بگو بگو شما حتی گرفت یا میتونیش بگو من دانشی داماد های مصدقی فقاره ما ندیده ما یه بار، آدنا بگم رفرش بشید من معمولیت دیدم، احواز بعد با یه گروه دیگه بچهای شرکت تو فرودگاه اعزام همیشه شلوغه. دیگه یکی از این خانوما اومد گه دکتر چمدینتو بده من ببرم بدم به بار. ما با هم دادیم و رفت چمدون رو داد به بار و تیکت هم برای من گیره خانمه آره. هم کنم. آها. ساکی چاله. آره ساکی من گرفت و بورد داد به بار و به قول تیکت هم برام کارت پرواز هم برام گرفت و منو داد ببار. بار. هیچوئن شب هم شرطو حسابو خونه دیگه چمدون رو گذاشتم تو خونه و صبح رفتم سرکار شب برگشتم ها شب اومد آبا خانده میگه مرجان کیه؟ چرا رو داد به بار؟ خواهیتون رو داد به بار؟ گفت مرجان کیه؟ گفتم کدوم مرجان میگی؟ گفت مگه چند تا مرجان تو بشتنسی؟ منظوره چیه؟ گفت شما مرجان طوفانی تو شرکتتون کار میکنه؟ و تام آره تا کجا می‌ذینه؟ گفتی شب تو هاپم بغل دست همدیگه نشسته بودی. این آدم چلبک رفته چقد خدا حالا بعدش هم داره میگه تیکتی که زده مجرم طوفانی. آها اینا آه، آره تا کجا رفته دا. بود تا کجا رفته بود. داستان داشتیم خلاص حالا رفته بگه من دانشوشنگ از طرف آره. من تشو خودم بازی گرفتم. پس ما اولین پله در رابطه با بحث سند استراتژیک بحث مزیت رقابتی هست خیلید مشخص کنید در چه زمینه یا زمینه های بهتر از رقیبمون میتونیم عمل کنیم یا باید عمل می‌کنیم ببینید دایپاتومی رو با هم بحث بکنیم و به قول معروف اول این رو با هم بحث بکنیم بعد وارد تحلیل مزیت رقابتی میشیم. ببینید مزیت رقابتی یعنی اینکه یعنی اینکه یه نوشتار ابزارم بینی بعد وارد این دایکتان می‌بشی. ببین من وقتی که میگم مزیت رقابتی متوجهی یعنی من مزیت رقابتی دارم. یعنی منبع منبع یا منابعی دارم خب منبع یا منابعی دارم که این منبع و منابع من بعد چهار مشخصه رو داشته باشه الما زوانی میتونه مزیت رقابتی داشته باشه و ادعا بکنه که مزیت رقابتی دارم که منابعی دارم و منابع من بعد چهار مشخصه رو داشته باشه چهار مشخصه منبع من, من چی میمونه مثل تجهیزات مثلا زیرساخت مثلا پول مثل برند سازمانی مثل دانش سازمانی مثل فرهنگ سازمانی اینا همش منبعی دیگه خب؟ حالا منبع یا منابع من باید چهار مشخصه داشته باشه یک کمیاب باشه دو ارزشده باشه سه حزینه بر باشه توسط رقبا و هزینه بعد جهت کپی برداری توسط رقبا و غیر قابل جایگزینی غیر قابل جایگزینی توسط رقبا یعنی منبعی که ما میگیم آقا این چهار مشخص رو داشته باشه میتونه برای من مزیت رقابتی کسب بکنه منبع باید کمیا ارزشته هزینه باعث افت کپی برداری توسط رقبا و غیر قابل جایگزین توسط رقبا باشه. اگر منابع شما این چهار مشخصه رو داره، شما من می‌تونی ادعا کنید مزیت رقابتی. حالا دقت کنید. دانش سازمانی یه مثال بزنیم آقا من ادعا می‌کنم سازمان من دانش بنیانه. دانش سازمانی در سازمان من وجود داره. یه منبع دیگه ها؟ دانش سازمانی کمیابه یا کمیاب نیست. آره یا نه؟ صفر یا 1 صحبت کنیم. آره یا نه؟ کمیابه کمیابه؟ اگه هست و یک میذاره نیست و صفت پس هست عرضش دهه؟ آره عرضش دهه ده هرزی نوبره جهت کوپی برداره توسط تو رو قبر اگه میخوان داشته باشن؟ باید آموزش بیدنه باید داستان داره دیگه، ها؟ پیل قابل جایگوزین یه توسط تو رو قبر یه موقع از رقم میگو من دانش سازمانی ندارم یه دستگاهی دارم که جایگوزین اون پس ببین، دانش سازمانی اگر سازمانی دارد، براش مزیت رقابتی حساب میشه یعنی میتونه میدونید در حوزه رقابت ادعا بکنه این خیلی مهمه تو کسب و مد... خیلی خیلی خیلی اهمیت داره تو کسب مدیریت استراتژیک ببینید من تئوری نمیگم این خیلی پرکتیکال و عملیاتی مزیت رقابتی برای سازمان ها خیلی مهمه و مدیر بعد دنبال مزیت رقابتی باشه یه سلام, سلام. یعنی باید همه را داشته باشه این می‌رسیم به مثال بذار با هم وارد میشه، وارد این جمعه رو در کن اگر منبع یا منابع شما ارزشته نباشند، is the resource of capability و یاد نباشد خب is the resource of capability rare, rare یعنی کمیابا. کمیاب, کمیاب نباشد این the resource cost to imitate هزینه بر جهت کوبی توسط رقبا نباشد یعنی صفت باشه خب Is the resource non-substitutive غیر قابل جای گذینی هم نباشد شما competitive disadvantage داریم مزید رقابتی که نداری، مزید غیر رقابتی داریم نداریم میخوام بگم؟ یه تو رقابت قابل خب و مهم یک کانسپت اینجا هست به نام پرفورمنس ایمپلیکیشنز یعنی خروجه راندمان، خروج تو این شرایط بیلر ایورج ریترن بیلر ایورج ریترن یعنی انتظاری که تو از بیزینس اداری من این اینو بنویسم اینجا که یادم نره حالا من فکر کنم الان همه شما میتونید جواب سوال منو بدید ما یه خروجی تو مالی دیگه مالی هم گزرونده دیگه یه خروجی تو مالی داری به نام درصد سود خالص، درسته؟ ها؟ مالی؟ چجور میشه؟ مست. آمد رو بهتون گفته دیگه درصد سود خالص چجور ماسره میشه؟ نسبت... اینی وقتی که پولو برایم نه ببین مهمترین خروجی که هدفی که مدیر و سازمان باید دنبالش باشه درصد سود خالصه. خواهشی که دارم اینو تو ذهنتون بسپرید. سود خالص اصلا مهم نیست. درآمد اصلا مهم نیست. هزینه اصلا مهم... درصد سود خالصه که خیلی مهمه. درصد سود خالص مساوی با سود خالص تقسیم بر درآمد. درسته؟ یه مثالم بزنم. فرض کنید یه شرکتی سال دو هزار درسته سود خالص درآمد هزار دو هزار ده هزار کدوم سال بهتره دو هزار سیزده وضعیتش بهتر دو سیزده سودش هزار تومان بوده، درامدش 2000 تومن، 2014، سودش آه... چهار هزار تومن بوده، من بر نوشتم سوشتم ببخشید هزار تومن بوده و درآمدش ده هزار تومن کدوم سال بهتره وزیدش؟ 2013 دقیق دقت قضیه رو ببین سود 2014، به سیزده چهار برابر شده چهار برابر سود خالصش شده درآمد چند برابر شده؟ 5 برابر. کدوم سال بهتره؟ 2013. 2013 بهتره. ببین خیلی مهم ما چرا؟ چون ما درصد سود خالص اگه حساب بکنیم این میشه 50 درصد. درسته. درسته؟ این میشه 40 درصد. چرا ما میگیم 2013 بهتره چون 2013 مدیریت خزینه بهتری داشته. 2013 اومده، راندمان بالاتری رو داشته درسته درآمدش کمتره، ولی سودش هم همون سطح بالاتره. اینجا هزینه خیلی بیشتر کرده تو این شرایط. حالا بعد سالی از شما و ما من دارم. کف سود و خالص تو بازار ایران چقدر بد باشه؟ کف درصد سود و خالص تو بازار ایران چقدر بد باشه؟ چهل درصد نه کف درصد کف کف کفش. یعنی میدونی دیگه سهامدار وقتی که این درصد رو می بینه یا حالا برید دویست دسته کفه کفش. سود دوام نکه. کف درصد سود خالص تو بازار ایران بیست دو, دو باشه در حال حاضر. چرا زن؟ بیست دو کف درصد سه خالص. کف کفش. دیگه چیکار بیست دو یعنی میگم بابا. این با میده دیگه. من پولم ببرم تو بانک بذارم که همون درصد سود خالص میتونم به دست بیارم. تو با خرید پروژه همون, همون همینه آره رو پروژه ها بیه سرمان گذاره همه بد باشه آب 22% حالا البته یه سری محاسبات دیگه من میگرد کف کف کفش حالا داستانی که وجود داره ما اینجا یه performance implication داریم ما کلی داستان رو دوجه میکنی این 22% رو که خدمت رو گفتم اینو بهش میگه average ریترن. average return متوجهی کفه کف 22 درصد تو بازار بگیرم تو هر بیزینسیا البته ممکنه شما الان مثلا 15 درصد باشی 10 درصد باشی دلیل و 10 درصد تو منم دارم توصیه میدم دارم میکنم تو بازار چقیق وارد شدم اوکی ولی یک شاخص برای اندازه گیری گرفتی داستان چیه اینو بهش بگن average return کف درصد سود خالص حالا وقتی شما همه این داستان را نو نو نو نو باشه پرفرومنس ایمپلیکشن چیه؟ بیلو عبرش ایترنه یعنی مسلمن بیلو عبرش ایترن خواهی شد یعنی زیر درصد مسلما زیر درصد خواهی شد گرفت قضیه رو؟ برم آره؟ حالا اگر منابع شما در سازمان عرضشته باشند ولی کمیاب، نباشن. هزینه بر در حت کوپه بردار توسط وسعت رقبا نباشن. غیر <تصفيق> بله قابل جای بحث حالا باشد نباشن اون زیادش بحث نمی کنیم. شما وضعیت مزیت رقابتیتون یه قسمتی از مزیت، مزیت رقابتیت کامله. <تصفيق> یه قسمتی از مزیت رقابتی رو داری و پرفورمنس ایمپلیکیشنش چیه؟ اوریج یعنی 22 درصد. تو بازار ایران هست. به 22% حالا اگر منابع و توال اصطاقی <تصفيق> از منابع شما عرضت باشد <تصفيق> هم باشد و یا حزینه بر جهت کوپی برداری توسط رقبا نباشد و قابل جایگزینی هم باشه شما مزیت رقابتی داری ولی مزیت رقابتی مفقته temporary competitive advantage دارید یعنی الان مزیت رقابتی دارید ولی ممکنه این مذیعت رقابتی یک ساله دیگه، دو ساله دیگه، سه ساله دیگه از دست بدی بد, بد. بد. و اینجا performance implication average return to بزرگ رو خوام average return to یعنی درصده میره رو سی درصد، سی و درصد. چی دارم میگم؟ و زمانی که هر چهارتای ای اینا یس یس یس یس باشه دلوقتي. شما سستین کامپتیتی بد یعنی یک مزیت رقابتی استوار داری دائم داری و ایباو افرژی ترن هستی یعنی چی؟ یعنی بله میره 40%, 50%, 10% سود خالص میشه بکشه کتاش دادو سازی در نه چرا نمیگی؟ چرا؟ من ازمانی یه می‌دونم بشه الان می‌دیم یک کیس با هم انجام میدیم دستتون بیار. یک کیس با هم انجام بدیم اینو رو متوجه شید داستانه مزیدت رو ها؟ رو خب بریم اول از سند استراتژیک این اولین شیط از سند استراتژیکه اولین شیط از سند استراتژیکه دوستان تو سازمانتون برید چند منبع مهم رو انتخاب بکنید چند منبع مهم رو تو سازمانتون انتخاب بکن مثل؟ تجهیزات، مثل... مثل... نمیدونم این هم سازمان به سازمان فرق بکن مثل دانش، مثل پول، مثل نقدینگی مثل برند خب؟ مثل برند حالا ما این شیطه چشین رو برمی کنیم؟ من ببینم اون اکسل رو باز کردم و شیت اول چی اسمش؟ نه. حالا من پاک کنم. خب، تحلیل شیت اول تحلیل منابع و توان استفاده از منابع است. حضرت. یعنی به عبارتی من اگر اینجا بخوام حالا چیز کنم تحلیل مزیت رقابتیه درسته؟ تحلیل مزیت رقابتی تو تو. این اولین پله از در سند استراتژیکه، خیلی ساده چند تا منبعو تو سازمانتون انتخاب بکنه، چندتا تا منبعو من اینجا به عنوان نمونه اومدم تو شرکت خودم متوجه ای؟ این؟ این انتخاب کردم، نیروی انسانی برند <تصفيق> هر چیزها، تعمیل کنندگان، دانش حالا که سازمان شما ده تا منبع باشه دو تا منبع باشه، نمیدونم، هر ادادی مدیری که میتونه انتخاب من اعتقاد دارم به عنوان مدیر آمد ویرا تهران که این شش منبعی که تأثیر میتونه توی مزیت رقابتی من بذاره حالا ممکنه شما چند منبعی دیگر انتخاب کنید، درسته؟ خیلی بعد چی کار میکنم؟ نمره به اینا میدم، نمره که بینام میدم از یک تا چهاره یک بدترین حالت چهار؟ بدترین خیلی ساده، یک، نیروی انسانی منبع شهاره یک آیا نیروی انسانی برای سازمان من در حال حاضر ارزشته هست؟ از ی... داریم میبینید اینو؟ آره یا بزرگتر کنم آیا نیروی انسانی در سازمان برای من ارزشته هست؟ من یک تا چهار کنم رو بدم من اون رو اینجاست که میگم استراتژیست بعد درگیر سرد استراتژیک باشه چون اون استراتژیسته که میفهمه دو مشاوره نمیتونه تو بکنه مدیر اداری نمیتونه برای براتو کنه به مدیر اداری بدیم نوره ده بهش میده آیا نیروی انسانی که من دارم کپی برداریش توسط رقبا هزینه بره آره هزینه بره چرا به خاطر اینکه الان مثلا من مدیر تولیدم حقوقش 3000 دلاره مورد 12 تا 16 بهش حقوق میدیم. رقیبم نمیتونه حقوقش بده. این اگه از یک تا چهار بخوام نمره بده نمینه 4 بشمید. خب نمره بالا بهش میدم. متوجه من هستین؟ حقوقم مگه جز این حساب میشه؟ دیگه مزیت رقابتی ما کپی برداری از این منبع توسط رقبا هزینه بر، من قدرت تولید دارم با یه سری مشخصات. <تصفيق> اگر رقیه من این این رو تولیده بخواد داشته باشه آیا مثل من میتونه بهش گوه بودم؟ آره یعنی اون آدم هم ریسورس رو کنه آره آره آره منبعه، آدم کسی هم مهمترین، سازمان آدم انسانه آیا نیروی انسانی در سازمان من کمیاب هست؟ من از یک تا چهار میخوام نمره بدم نمره چهار میدم، آره کمیابه بالاترین نمره رو آره میدم آیا این نیروی انسانی توسط رقبا غیر قابل جایگزینی از یک تا چهار بخوام نمره بدن نمره بالا بهش میدم آره چهار نمره میدم این اعداد با هم جمع میشه شو چند 15 دقت کنید تو این شیت من نوشتم یعنی کاملا استانداردایزش کردم اگر جمع امتیازات 16 باشد جمع امتیازات 16 باشه متوجه سازمان دارای مزیت رقابتی دائم بوده و سود خالص آن بالاتر از حد انتظار. انتظار اگر جمع امتیازات بین 4 تا 16 باشه سازمان دارای مزیت رقابتی یا قسمتی از مزیت رقابتیه و سود خالص آن متوسط و پایین تر از حد متوسط است متوجه استی و اگر جمع امتیازات پایین تر از چهار سازمان زلده و مزیت رقابتی آماده خو خب؟ مامرس شما دو برند آیا برند در سازمان من ارزشته هست از برندی که الان من دارم از یک تا چهار نمره دارم نمره دو بیش می ده خو خب؟ آیا کوپی بار توسط رقبا حذی نبرد برند نه حذی نبرد نیست از یک تا چهار نمره یک بیش می ده خو خب؟ آیا کمیابه نه کمیاب نیست از یک تا چهار نمره یک بیش می ده آیا د قابل جایگزینی نه اینجوری داره در برند های هم تو بازار هستم هم باز نمره یک بهش می نمره من چند شد؟ 5 آیا مب و توانست؟ حالا بحث بعدی پول آیا پول من نقدینگی من در حال حاضر برای سازمان من ارزش ایجاد میکنه از یک تا چرا نمره پایین بهش میدن نمره دو بهش میدم. خب آیا پول؟ تاسات رقابه هزینه واری من یه نتیجه دارم که وظیفه من نداره نه اینجوری نیست من یک تا چهار نمره یک بهش میدم آیا کمبیاب استان کمبیاب بیش نمره سه بهش میدم خب آیا دیگر قابل جایگزینی از یک تا چهار نمره یک اصلا استان غیرقابل جایگزینی داره یعنی یک مورد خاصی نداره اینها باز نمره سه میدم تجهیزات تجهیزات از یک تا چهار نمره دو میدم یک میدم هزینه بر بودن و کمیاب بودن یک میدم غیر قابل جای هم یک میدم خب؟ تعمیم کنندگان سه، دو، دو، یک دانش، چهار میدم چهار میدم کمیاب چهار میدم غیر قابل جای گذینی چهار میدم خب؟ این نومرها با هم جمع شدید چند تا با من رسد کردم تو سازمانم تا درسته؟ یک، دو، سه، چار، پنج، شیش اگر ریت این این عداده. چند تا پنج، سه، پنج، هشت، شونزده درسته؟ این هایلایتش میکنم؟ خیلی این پایین ما نمشیم منابع و توان استفاده از منابع این عدد هشت و شست و درسته؟ هرم. این عدد عدل رنج اون ششتا عدد باید یعنی عدل رنج پنج،, پنج، پونزده، پنج، سه، پنج، هشت، میان. این با... هش شش هش میانگین این شش عدد مساویه با؟ هشت مومه شسته رقابتی من هشت مومه شسته شش, شش. رقابت سازمان. که اینجا دقیق گرافش رسم شد می‌بینی که ما توی دو تا خوزه و ازمون اصلا خوب نیست سه تا چهار تا تا کنندگان، تجهیزات، پول برند، فقط نیروی انسانی و دانش یعنی وابسته به من منابع انسانیمون و دانش منابع انسانیمون هستیم ولی منابع مشهودمون، مثل تجهیزات، مثل زیرساخت، وضعیتش خرابه نمره من چند شد دوستان عزیز؟ هشت و شست و شش، تو کدوم کتگوری میگنجم؟ کتگوری؟ چهار تا شما بروه تا هی نذیت روبطی ها موقت و سود خالص من رو متوسط. خب و واقعیت همین همینه سود خاله ما درس از سود خاله من, من گرفتم. و تو شرکت آخرین ساعتاب س سوود زیان من گرفتم۲۲ درصده ۲۱ درصد ۲۲ درصد. این واقعیت ها ای یه واقعیت گرفتید قضیه چی شد؟ سخت بود ها سالی هست اگه سای هست بپرسید متوس شما؟ شما متوجه شدی؟ شما متوجه شدی داستان چی شد؟ گرفتی الان از شما داری تو اکستراشن فقط عدد بارات موقع منابع تو مشخص بریم از ارتباطی به دست منابع خیلی مهمه. اون استراتژیست بدن جو استراتژیستی که بابا مدیر شیطان چرا منابعه گذاره؟ مثلا بنیم چه میدونم ساختمان، ساختمان مهم نیست. ولی برای شرکتمون مهم باشه. خب خرخو رفو، پیروس رو بعد. در آیه رو یادتون میاد دیدین اسمت بشتارید؟ فکر کنم اینو توضیح دادم خدمت شما ببینید آیه کاتلر بله بله کاتلر در کتاب مدیریت بازاریامی میگه ما محصول و خدمات نمیفروشیم ما ارزشه که داریم میفروشیم و در قبال ارزشه که داریم پول میگیریم نکته سازمانی که ارزش بالاتری خلق میکند متوجه هستید لذا پول بالاتری از مشتری میگیرد سازمانی که ارزش بالاتری خلق میکند برندش در بازار قوی تر است این نکته است ببینید یه خلاصه من این قضیه رو بگم این دارک پترن این چی میگه دقت کنید دقت کنید ما میگیم سازمان ها ارزش میفروشن ارزش خب ولیون و ارزش ها اگر بالاتر باشد قیمت کالا بالاتر است قیمت کالا که بالاتر باشد برند سازمان سازماناً مسلماً تره برند رولکس درسته قیمت بالا داره چون ارزشش بالاتره چون ارزشش بالاتره خب ارزش چجوری محاسبه میشه سی پی وی value perceived value ارزش درک شده درآمد مینوسیمش ارزش درک شده توسط مشتریان یعنی هر چقدر مشتری ارزش بیشتری رو بفهمه و درک کنه قیمت بالاتر شما می‌تونه برای شارژ کنه یعنی تو با قیمت بالاتری بهش بفروشی میدونی چی دارم میگم حالا سی پی دی چجوری محاسبه میشه یعنی ما اگر... یعنی ببینید مرحله دوم از سند استراتژیک نوشتن سی پی دی برای سازمان بعد بدینین چقدر ارزش داریم به مشتری میفروشیم اوک؟ سی پی دی مساوی با مجموع values منهای مجموع هاست خزینه ها ارزش های سازمان، من های حزینه هایی که برای سازمان داره به وجود میاد یا برای مشتری به وجود میاد میشه CPV Customer پرسی Bag حالا چجور ماسبه میشه ببینید، ما میگیم شرکت ها و سازمان ها چهار نوع ارزش رو میتوانن خلق کنن تا چهار نوع ارزش رو میتونن خلق کنن ارزش شماره یک ارزش پرستیژی یعنی شرکت‌ها و سازمان‌ها حد ده اکثر چهار ارزش میتونن خرف حد ارزش اجتماعی خب ارزش محصول و ارزش خدمات متوجه هستید؟ ها؟ ببینه الان مثال بذار بزنیم ارزش اولم ارزش اینا رو یه دیویو بکنم ارزش پرستیجی یعنی چی؟ یعنی مشتری به خاطر پرستیج اون خدمات و کالا پول پرداخت میکنه پرستیج دارون کالا و خدمات کلاس داره با قول کلاس داره خب؟ ارزش اجتماعی چه ارزشیه؟ مشتری گوی آقا کالای رو می‌خره به خاطر موقعیت اجتماعی اش داره اون پولو پرداخت می‌کنه و اون کالا رو خریداری می‌کنه. خب؟ گوی آقا ارزش محصول مشتری به خاطر اینکه دنبال یه محصول خاصیه میره اون پولو پرداخت می‌کنه. ارزش خدمات گوی آقا مشتری به خاطر خدماتی که اون شرکت یا اون محصول داره میده میره پول پرداخت می‌کنه. مثلا یه محصول شما میره خریداری می‌کنه میگه این بالانتی داره میگه اوکی منو می‌خرم. خب؟ یه مثال بزنیم ساعت رولکس حالا بریم سراغ ساعت رولکس ساعت رولکس ارزش یه پرستیجی داره بله. بله. بله پرستیج داره دیگه خب همش ارزش اجتماعی داره بله که داره ارزش محصول داره آره ساعت خوبیه ساعته تو اگه بخوای زمانو ببینی ساعتت ساعت نیخ... ساعته دیگه بالاخره خب خدمات سبت البته داره یعنی شما ساعت رولکس بیانی یک سال مثلا گارانتی میده، گارانتی مثلا بین الملدی میده خب یا پنج سال گارانتی میده، کارت گارانتی بین الملدی میده متوجه هستید قیمت ساعت، این چهار عرضشو خلق داره میکنه قیمت ساعت رولکش شمده؟ بای سیز از سیا پنج میلیون تومان. یعنی از سیا پنج شروع میشه سیا پنج دو جل ملون تومن لذا ما باید بدانیم سازمانمون چه ارزشی رو داره خلق میکنه بعد و بر اساس او قیمت گذاری برای کالا و خدمات غیر چه این باشه مشتری ناراضی میشه پس این ارزش شد درسته حالا سازمانهایی که تولید کالا و خدمات میکنند در مقابل ارزش یه سری هزینههایی رو ممکنه برای مشتری به وجود بیارن و این حزینه ها خوب نیست و این حزینه اگه بالا باشه مشتری ناراضی میشه آنحپی میشه خوشایندش نیست حزینه هایی که ممکنه سازمان ها به وجود بیارن خب حزینه پولی حزینه زمانی حزینه انرژی حزینه روانی خب نوکته نوکته سازمان ها ارزش ها رو بعد چیکار کنن؟ برای بالا دیگه ها؟ حزینات چه اتفاقی باید دو و مجموعه این دو چی میشه وقتی شما ارزش ها رو میبرید بالا حزینه‌ها رو میارید پایین چه اتفاقی میفته؟ سی پی وی فی فیلمی فی بالا حالا نوکته هزینه پولی چیه؟ یعنی مشتری حس کنه محصول و گرون خریده بهش انداختن میدونی چی دارم بهت میگم؟ محصول و گرون خریده وقتی مشتری حس کنه محصول و خریده لی میشه، ناراضی میشه و وقتی ناراضی بشه، یک خریده مجدد و انجام؟ نمیده میدونی؟ میشه هزینه پولی هزینه زمانی یعنی چی؟ شما محصول و خدماتتون بعد به موقع دست مشتری باشه. اگه قول دادی محصول و خدماتت رو یک ماه دست مشتری میدی، بعد یک ماه دست مشتری بدی. به مقواه اوقات این تعامل رو با مشتریانم دارم. مشتری به من میگه آقا این شفت رو میتونی من تعمیر کنی؟ میگم آره. میگه زمان؟ میگم 6 ماه. میگه 6 ماه خیلی طولانیه برم. من. من سه ماه می میخوام. میگم اگه سه ماه این شفت رو برات تعمیر کنم 30 درصد میری رو, می رو قیمتش. خب، حالا شما فرض کن سه ماهه باش توافق کردی که تعمیر کنی پول شب گرفتی ازش، به جای سه ماه همو شیش ماه تحمیل بدی چه دفعه میافته؟ آمپر میچسبونه دیگه درسته؟ ما اینو رو میشونیم حزینه زمانی وی داره برای سازمان مشتری آمپر به چسبونه برای سازمان، حزینه داره حزینه انرژی چیه؟ حالا فکره حزینه انرژی چیه؟ دهش بین خودت بیا محصول وردنذر کاپول ببره. خب از انرژی دیگه. شما وقتی محصول می‌خوای تحویل مشتری بدی خیلی قول معروف ریلکس کمترین انرژی رو بعد از مشتری بگیری و محصول تحویل مشتری بدی. میدونی چی دارم میگم؟ خیلی جالبه. آچیا خزینه انرژی رو وحشتناک کاهش داده. شما مثلا ببینید یه ذره چه كومود دیواری می‌خری؟ بزرگ تو آیکیا نمی‌دونم کی، کل رو که از شما آیکیا رفتی؟ شما رفتی ها کل کدوم آیکیا؟ من تو کانادا، تو فرانسه، تو دبی، تو ترکیه همه اینا رفتم. آیکیا رو رفتی. خب حالا هر من مجسا میگم بکن وارد آیکیا که میشی، شما افرادی که مثلا قرار باشه به شما کمک کنن حداقل خیلی کم می‌بینید. درست, درست, درست؟ چون همه چیز اونجا خب هر جایی که شما یه کاغذ با یه مداد برات گذاشته یه کاغذ با یه مداد که کود جنسی رو که می‌خوای یادداشت کنی حتی با یه متر کاغذی آه مترم برات میذاره که متر کنی اینا یعنی به نوعی سیستمو طراحی کرده که تو دیگه وابسته به نفران میشی آقا اگه ممکنه من سالی ازش برام اون نفر از آیکیا بیاد به تو کمک کنه خب میری وارد آیکیا میشه مثلا یه مبلی رو خوشت میاد یه میز رو خوشت میاد کد داره کدش یادداشت می‌کنه تو اون همون شیتی که برداشتیم مدادام داره کدش یادداشت می‌کنه <تصفح> یه صندلی می‌بینی خوشت میاد شیتت اون کدش یادداشت می‌کنه از آیکیا که می‌خوای خارج بشی انباره، یه انبار بزرگ متوجه یعنی <تصفح> از صندوق پرداخت یه انبار بزرگه کدایی که یادداشت کردی رو میری تو انبار که اونجا بحث شناسایی عدیاوی هم از پیدا می‌کنی جبعس ور می‌داری می‌ذاری تو ترولی ناید. خب؟ می‌ذاری تو ترولی و ۸۰۰ درصد از محصولاتش رو به راحتی با ماشینت می‌تونی هم کنی لازم نیست کامیون بگیری وانت بگیری اینجور داستان ۸۰۰ درصدی هفته ۸۰ درصدش رو خودت می‌تونی هم کنی چون بسته‌بندی‌هایی خب؟ بسته که داره به قول معروف یوزر فرنگلیه خب؟ بسته‌ها رو ور می‌داری؟ و میای صندوق، بستر رو میدی، پول میدی، بستر رو میدی، پولش رو میدی یا خالش میشه حالا، فرص میز نارخوری خریدی اینا سر میکنن، به نوعی بسته بندی کنن که به راحت شام بتونه هر میکنی میای تو خونه، باز میکنی میبینی اعای باها این میز نارخوری به هزار تیکه تبدیل شده خب، کچیک کچیک کوچیک, کوچیک یا پارت پارت ولی یه گایدنس داره یه گایدنس یه نقشه داره با آچار پیش چه می دونم هر وسیله که برای منتجی این میز لازمه، اونجا برای تو کوشت. یه نقشه هم داره. می بره تو،, تو فضای مثلا بازی پازل. این بازی پازل میمونه. و معمولا این نقشه که بازشته یه دیگه یه بچه داده و هم ساله میتونه اینو منتاجش کنه. جالبه. یه خودی میشی اینو منتج بر میز فوری رو منتجش کنی. این از پشتش چی میگن؟ میگر حذینه. <تصفيق> انرژی پاساج پالادیو برید بعد از میدونه الف رفتید شما ها کامل نشده در واقع چرا کامل شده من رفتی شما من دو سه سه چهار پیش خیلی از طبقاتش کامل شده دو حتما برید پاساج پالادیو من من فکر می کنم این فکر مطمئنم این تنها پاساژیه که یا شاپینگ مالی که بر اساس استانداردهای میدان البلالی ساخته شده دوبای هم نه منشین واقعا تو دبی هم هست دیگه نه این چیزی که من اینجا دیدم آره خیلی شیکه خیلی خاص و شیکه خیلی خاص و شیکه سنتو برنجک می‌می یا چیز چیز قبله مقدس عرضه میدونه الف بعد از میدونه اجازه رد بکنی سمت راست سمت راست بالا آلفداریه خب منندس رفت آره منندس رفتاری که چلو کبابی داشت دیدم توی چی چلو کبابیه نفسش میاد. این من هارون فدی گزارش میدم. الان میلیاردره، مولتی میلیاردره. حالا با چلو کباب چهجوری به این من ببین پالادیوم من یک شاپینگ مالی در مالزی و سنگاپور شاپینگ های خیلی گردن کلوفتی داره. تو کرنپور هستش مشابهش. حالا همین میخوام بگم یک شاپ های ماله کلفت کلوفت آسیای توی مالزی، سنگاپور گاردن کلوفتی، تو به اینجوریه خب. بهترین شاپین مال کوالالامپور پابیلیونه پابیلیون خب بهترین شاپین مال کوالالامپور خیلی شیک و خیلی پرستیج پابیلیونه دقیقا این پابیلیون رو ساختن واسه اسمش هم پالادیومه خب اومده پابیلیون پالادیوم متوجه حالا من با خاطر چی اینو گفتم اولین نکته که من توی این پاساج پالادیوم دیدم پارکینگش خب پارکینگ خیلی مهمه توی شاپین مال پارکینگ مهمه چرا؟ چرا ازین انرژی رو تو کاش بدهی؟ اول نه نه چند طبق پارکینگه؟ هفت طبقه هشت طبقه؟ هش طبق. هفت طبقه پارکین. هر پارکینگی رنگ داره هر یه رنگ داره رنگ مشکی، رنگ سبز رنگ قرمز رنگی زمینی چرا؟ وقتی که ماشین تو بودی پارکین تو پارکینگ پارک کردی رفته تو شاپیمال بله چهار سال خاصی برگردی یادت باشه یادت باشه گذاشتی با رنگ تو همه این سران چرا دیگه؟ اول سر رانی بودن دادارن چرا؟ رنگ داره دیگه؟ رنگ داره که مهمتر از اون. شما وقتی که وارد پارکینگ میشی، اما هم ماشینا گذاشته شده. کدوم پارکینگ خالیه؟ کدوم مسپوره؟ چرا؟ سبز و سبزه؟ از دور داری میبینی؟ اونا که قرمزه ماشین تو پارکینگی. سبزه یعنی خالی. سری جای سبز بزاری. اینو ما بهش میگیم هزینه انرژی. تو بازاریابه بعد هزینه انرژی رو برای مشتری کاهش بدید. نه که افزایش بدی یعنی یه کاری کنید کاهش بدید. من تو پارکینگ ماشین تو پارکینگ، همین که 12 درجه زیر می‌گرد. گمم گم کردم. نمی‌تونی پیدا کنی. نصف روز پارکینگ گارتونه در تو نه چرا؟ لحظه. خیلی وقت واسه تو هر که می‌رفتی منو دور می‌ذاری از خیلی وقت واسه برای من خیلی پیش خیر بابا واسه جامش ولی خب با یک سیستم های خاص اون هزینه انرژی رو میتونم کاهش بدم خیلی جالبه من تا چند وقتیش با همکارم خب مسافران ما زیاد بریم همکانه نه ما دیگه گذشته ما گذشته ساعتی یکی دو صبح بود از این فرودگاه مزخرف بهراادشون خارج میشه من نمی دونم چرا اینا سیستم درست نمیکن هنوز که هنوزه باید جلوی اون چیز چی بش میگه جای که خارج میخواد بشید پیش تو بدهگه رو بگه مثلا شد دو هزار تومار دو هزارارتم از تو جیب در بیاری حالا دو هزارارت پ دوش ماشیین پرس سر به بدی اون بقییت رو بده حالا بسطا پول میافته زمین پیادهشی پول برداری تومت خارج. اصول درستش چیه مثلا فرودگاه سنگاپور یا فرودگاه کوالالامپور خب شما از پارکینگ میخواین ماشین تو پارکینگ دیگه درسته آره وقتی وارد پارکینگ یه کارت بهت میده درسته کارت میدن. تو فرودگاه دستگاه هایی هست مثل آبربانک خب خب نه، مثل آبر بانک دیگه متوجه این کارت تو وارد میکاره میگه شو 2000 تومان 2000 تومان همونجا با دستگاه پرداخت میکنی پول پردا به دستگاه پرداخت میکنه کارتت شارژ میشه از پارکینگ که میخوای خارج بشی کسی نیست که از تو پول بگیره همین کارت میکشی دروازه میشه خارج میشه اینو ما بهش هزینه انرژی انرژیه اینو هم ازینه انرژی یعنی شما با یک سیستم روش پیتزا فروشی پرپروکس سر منجک از شلوغه دیگه نمیدونم رفت دیگه شما وقتی پول میده میگه اوچه پیتزا یه داره دست سیگنال یه الارم باکس فیت میده آره برو تو ماشینت بشین متوجه هرمان از آماداشو این زن میزن و میره غذاتو میگیری میداری این رو می می اینو با بشم انرژی و حزینه روانی حزینه روانی ساکی کاست یعنی چی؟ یعنی میری جنس می رو پول رو پرداخت میکنیم متوجه جنسو جنس رو تو خونه استفاده هم داری میکنیم بعد از یک سال، دو سال میگی بابا این جنس کیفیت نداره بعد از اینکه داری از جنس مصرف میکن توت ما مارکتینگ از جنس مسلط بده میگه جنس کیفیت نداره و حس بدی رو نسبت به اون برند پیدا می‌کنه این برای سازمان چی داره هزینه مم. روانی داره یعنی مشتری ناراضی میشه بعده خرید مجدد رو انجام نمیده ببین آن چیزی رو که ما در سند استراتژیک بعد اینو متوجه داستانش رو در سند استراتژیک بعد ما بکنیم سی پی ویه که شما خلق می‌کنی کستر پرسیپت والیو هرچقدر عرضشار بالاتر حزینهات پایینتر حزینهات که برای مشتری ممکنه به وجود بیاری سی بیشتر میشه و وقتی سی بیشتر بشه یعنی برند قوی تره یعنی میتونه قیمت بیشتری از مشتری بگیره این مهمترین کانسپت در استراتژی بازاریابی چپتر سه کتاب مدیریت بازاریابی آقای فیلیپ پاتلر چپتر سه خوب یلا اونال که میره میبینه یه اون ارزش هایی که میبینه اینجا که میینه آدم ناامید میشه. دقیقاً همین. یعنی واقعا آدم ناامید میشه. میبینید کوچکترین کوچکترین اصول رعایت نمیشه. یه میگم کفه کفه آره. شا میبینی هیچ چیزی ارزش حتی تو همون هایپر استار، حتی تو یه مالای بزرگ آره. ما این حالا شاپینگ مال پادلیم اولین شاپینگ مالی تو ایران به عنوان بر اساس استاندارد ساخته خب حالا بعد که آیا آجی میمونه اینا مش آیا افرادش مغازه‌هاش فروشنده‌هاش خدمات دهندگانش هم به همین مسائل مرتبط هستن و انجام میدن یا نه ببخشید ما فقط نشد با طرز لیوسی تو بالا نکرده آره بله بله دادش هست با کلن تا را تحتیلی نمیشتی بسید کلن ما آره من میتونم شیست کنم مدرش کنم براشت نه چه ما یه ده کنم من براشت میتونم براشت ممنون آید ممنون آید همین از کلاسی نظر بشتن آره من مجوریتی وقتی بگم نو پرابل اصلا من خودم میپیچونم نمیام. اوکی؟ ما یه صحبت کردیم صحبت کردیم قضیه این شد که گفتین ما تو این یمانیم دو تا آخر سال داری درگیری کاری زیاده این دو سه روز انرژی به اون میده تا اید که دوباره یهمانیم بکشیم صحبت می‌کا حالا شما حرف نظر من بهش میگم بهش میگم چون همیشه آخر سال فشار کار خیلی زیاده حتی من چند تا سخنرانی دارم، جمعه یه سخنرانی بعد از آن دارم، حتی باشم، مسافرات، متاسفانه نمی‌تونه بیدیم ولی اوکی، من حالا بهش میگم من صحبت می‌کنم، شما صحبتی نکنم، من بشه می‌کنم این این مجموعه دیگه این مجموعه ازش‌ها، مجموعه حزینه‌ها از از از اگر این بالا برود و حزینه‌ها پایین بیاید سی می بی, بی بالا. این موردی که شما گفتی آیا مغازه ها می توانند نه. بر اساس اون اصول برخوک ها تو بحث برند یه بحث ریتیل برندیگ داریم ریتیل برندیگ مقازهی که بره تو پالاڈیام تحسیس بشه مجبور بر اساس تو اون فضا قرار میکیره جز اینکه این حتما اجبارشون بکنن اصلا اجبار هم نکنن. یعنی اجبار. این تو نمیتونه بره تو پالاڈیام یه بغل معروف چیه اسمش یه حراجی بزنید بچه‌ها لباسای خیلی لو پروفایل و اینا بفروشید. چیزی با برند بین اونجا بفروشید. چیزی با برسی چرا چون قیمتش بالاست. الان اجاره یه مغازه اونجا نمیدونم متری. خیلی راحت یه من مغ... ها راحت قنالیشی چیز بکنیم ما. آها. انادیشو داشتن خراب کردن. بقول یه میلیون بودی 40 میلیون فقط چیزشه. اجارش. نه. شارژشه. شارژشه. شش میلیون شارجش استفاده نکرده. نه. کل از همه نه رقابان که آنها مثلا شما اجاره مغازه، اجاره سرکوفلیس سال مثلا یه میلیارد، اینجوریه. یکونی میلیارد، دو میلیارد. و این جور اساسی بدهفروشی. می مغازهش. بگم من دلوزدمشی میلیون. انقدری بزرگیم داریم. باله. باله. هر سه بودن و داری چیزش نبود؟ چندم از همه توش شده؟ می مثلا ازشون نمونه بودم مثلا شبیه آره، نخریه اولیه. اصن من دیدم کیدام خورد. آره. من اصلا فکر نمی‌کنم یعنی چی جایی. خب، ببینید پس سی پی وی. حالا ببین سی پی وی رو محاسبه بکنم. راستو آخری بعد از از از چیه؟ ازینه روانی، سکی کاست. خب. آره، <تصفيق> آره. آ، آبرسوت هستن یا خوشبستر کلاس. خب، تحلیل ارزش درک شده توسط مشتریان استوری نه همشون تو یه دونه فایله همش تو یه دونه اکسل شیته تر پایین شما از من فایل رو میگیرین؟ آره آقای من متاسفانه فلش نمیبردم آره بردم ولی حالا باشه همین میگیریم بعد هفته بعد هفته بعد که تعطیلونه اگه لازم نداریم آره نه لازم ندارم اون تو فلاشش از چی نمی شما که بذارین خب دوستان بریم هم جلو تا ببینیم به چه صورت میشه خب عواز با, با منه؟ آه. خیلی مهمه این، دقت کنید این شیط رو من اینجا گذاشتم که شما CPV یعنی کل این داستانی که من اینجا نوشتم محصبه بشه شما تو شرتر ارزشی که برای مشتریان خواهر بکنید و باید محصبه کنید درسته؟ شما به اینجا خوش خب حالا خیلی رو فروشی دیگه این ایشون چه CPV؟ فقط موازاش در بازشون نخوره بر آره. CPBی که شما داری خلق میکنی چه CPBیه؟ برای مشتریانت. ببین ما چهار ارزش رو اینجا داریم. درسته بیا اینجا. ببین ارزش پرستیجی، ارزش اجتماعی، ارزش محصول، ارزش خدماتی. چهار ارزش. من از شما میخوام به این چهار ارزش تو سیستم خودت وزن بدهی. ممکن برای یک بیزینسی متوجهی اصلا ارزش پرستیجی وزدی نداشت رو شد آبا من رفتم جمعه پیش این خیابون چاره استانبول پاساژ پروانه گاراژ سل چیزای خوبی داره اونجا ولی اصلا آره حاله میشه راه رفت آره. <تصفح> گاراج سل اونجا پرستیج ولی یک جایی برای بحث نداره, نداره. درسته؟, نداره. نداره. نداره. درسته؟ نه اگه یه بیزینسی اونجا به مثلا را نمشه پرستیج ولی نداره که یا پرسونالیتی ولیو نداره ولی آره من ارزش محصول و خدماتو داره ما بعد وزن بدیم حالا من میتونم از شما بپرسم به این چهار ارزش وزنهی میخواد تو مغازه شما بکنی ارزش پرستیجی دارید شما ندارید اگه دارید چه بر وزن نمیدید ارزش خدماتی ارزش محصول ارزش اجتماعی بدید اول وزنهی کن وزن بده بس از یک بده دو تا سه، تا 5 تا ما بس یک درجه اهمیتش رو می‌خوای اون بیزینس مشخص بکنی متوجه درجه اهمیت شما متوجه می‌شی خب فکر درجه اهمیتی که حالا باشه یا نباشه آره ممکنه اساساً نباشه صفر میدی یعنی میخوایم این کارو بکنیم ولی نمیشه آره استاد از چند در چنده اول بس درجه اهمیتش رو از یک بده 2 بده 20 درصد، 30 درصد، در جعبه ممکن بوده آوا ارزش پروسیژش تو مغازه ما خیلی من، 80 درصد وزن داره، 70 درصد وزن داره. برو، راه برو. Relax. من الان تو تو چهاره بخوام حساب بکنیم این چهار تا ارزش؟ ارزش پروسیژش آن مکانی که ما هستم یک. نه وزن درست درست درست درست درست درست نه وزن بده بهش، درصد، درصد، درصد بده اما تو هم کار، همیت رو شما شناس صد 50 درصد هست اصلا, اصلاً پرس. ده می ده می ده. ارزش پرستیژ میخواد بسخور متوجه شدی یعنی ارزش پرسیج؟ اصلا برای شما مهم هست یا نه پرستیژ برای مشتری میخواد فهم کنی نمیخواد نه نه من دارم ارزش نه نه صفر پس ارزش صفر است ارزش ارزش اجتماعی چی برای شیر اصلا ارزش اجتماعی بی معنیه شیر صفر محصول محصولی که قاعدتا خدمات، چه خدمات خدمات شما مشتری همت میده و چه بحثی به محصول میشه چه بحثی به خدماتت میده محصولی که خب بالاش ارزشش داریم کنیم با بهترین کیفیت درست کنیم خدماتش هم من میتونم مثلا توی پولی بیارم پایین‌تر تخفیفی میشه جزئی استفاده نه نه نه اشو نه. نه. اومده فروشا آها شما اون دفعه اولش شما اول هم به محصول چه وزنی میدی چه درصدی میدی نظر درجه اهمیتی چه درصدی میدی به محصولت درصد ها نه. اوکی نه نه. یعنی محصولو میدیم 80 درصد 8 دهم درسته ها بعد در تناقص خدمات تا باید 20 درصد بشه دیگه دو دهم باشه بعد اون درصد خدمات هم 20 درصد دیگه حالا امتیاز بدیم ارزش محصول از تا امتیاز بدیم خدماتت هم از صرف تا چهار مخصول که چه یعنی کیفیت کیفیت مخصولتو از تا چهار چه نمره بشی من بهش سه سه، چهار سه سه, سه سه چه نمره بشی اصلا شما چه خدماتی میدید؟ خدمات توی بازپرداختی نخواد بکنه بلند مدت تا آه آه ها چه خدماتی داری بله. چه نمره بهش میدی؟ خدمات به از سفتا چه, چه نمره بهش میدی؟ دو, دو. عرضشها چهر شد دوستا؟ دو هشت هم از چهار که ایشون خلق میکنه برای مشتریان دو هشت هموند چهاره خب؟ حالا این هزینه ها ببین هزینه پولی، زمانی، انرژی روانی. اینا رو می‌تونی درصد به من بدی؟ هزینه پولی چقدر برای شما مهمه؟ زمان چقدر مهمه؟ انرژی چقدر مهمه؟ اینا رو بعضی وقت بس چون تو بعضی ها بیزینس بیزینس‌ها هزینه خزینه پولی اهمیت نداره. تو بعضی ها بیزینس ها خزینه انرژی اهمیت نداره. هزینه زمانی اصلا مهم نیست. خزینه پولی برای مشتریان این که مشتری گرون خریده، ارزون خریده مهمه برای چه وزن میدی؟ چه درصد مهمه یه درصد بده؟ پنج درصد پنج درست؟ نه پنجا درصد پنجا خب پنجا درصد دیگه میمونه که بینسته تا تقسیم بکنه زمانی، پولی، مثلا زمانی، انرژی، روانی زمانی, زمانی مهمه برای آره زمانش مهمه کی چند درصد بدیم 5 50 درصد مهمه انرژی زبانی زمانیش خودش 25 درصد میشه 25 درصد مثلا شما چه چیزی برای 8 با تعهد درین آره دیگه زمانه مهمه انرژی چی یعنی شما برای مشتری شما مهمه که محصولا ببرید بهشون تحویل بدی یا سیستم سیستمی بچینی که راحت محصولا بهشون تحویل بدن اصلا نمیتونه حل نه مهمه درم من فکرم پوندر درصد هم به این درصد هم بدیم خب؟ در درصد هم به اون یکی مجبوره بدیم روانی چی میشه؟ جان؟ روانی روانی یعنی مشتری خرید بس شما بکنه؟ بعد اکیفیتش خوشش نه, نه. یا کنا بگه خوشمزه نبود چی شیرنی بودش میگه همچنه یه سیدش نمونی خب امتیاز بخواه بده هزینه پولی, ز... پولی زمانی انرژی روانی رو از تا امتیاز بده. اگر خیل قوی هزینه رو داری کنترل میکنی خیل قوی نمره پایین تر برد بدی اگر ضعیف داری کنترل میکنی نمره بالاتر بده استفتا چالا هزینه رو را داری کنترل میکنه براماشون گروم میدی، ارزو میدی چجوریه خیل قوی داری کنترلش میکنی؟ نه نه؟ یعنی میگن گروم داری میدی؟ نه نه مم. متوسط دیگه شده ها؟ دوه استفتا چالا چون دو بدیم دو هزینه زمانی از صفت تا 4 چه به موقع تحویل میدی یعنی مشتری طار شده از شما کامپلین بکنه شکایت بکنه آقا تو تیم تعویض دادیم؟ یا آیا تو سیستمی داری که محصولاتتو به موقع تحویل مشتری بدی حالا که به موقع دادم به موقع بدی باز صفر اینو میدیم ها مشکلی نবুده ما راضی نیستیم آقا امروز آقا 018 100 خزینه انرژی راحت تحویل میدی محصولاتتو به مشکل زمانی بره را طبیل این هم صفت میدیم من گفتم اگر تو حزینه وقتی شما حزینه‌ای برای مشتری خرم نمی‌کنه یا داری کاهشش میدی، برای عدد پایی‌تر می‌دیمش خب حزینه‌م شکایتی بوده از مشتری بس صفت‌ها چه, چه نمره یک بدیم، دو بدیم، زبط. دو بدیم کنید کنیم، ها... مرسی، ممونم دقیق کنید ارزش های ایشو شده دو و هشت ها شده یک و دو دمام این دو هست هم کم میشه سی پیوی یک و از چهار پایینه ببین دقیق کن، این به این نیست که بده ها اگه پایینه یعنی قیمت خیلی بالا نمیتونه شارش کنه مشبری یعنی به عبارت برندش خیلی قوی نیست آره یعنی سی پی ویش با کاستوم پرسی ولیش پایینه. پس داستان چی شد؟ پشیت دوم از سند استراتژیک محاسبه سی پی دی. اوکی؟ کیویر؟ خب سوالی هستش؟ Sorry نکته خاصی قسمت اول پاس شد عددا رو بالا میدیم اگر مثبت بود یعنی دیگه ارزش بیشتر خلق می‌کنه عدد بالاتر یعنی ازینات رو خیلی قوی‌تر کنترل می‌کنه ازینو عدد بالاتر خب یه چند تا تست انجام چند تا برم که شما بدم عامل می‌کنه آخر کلاس آخر کلاس هستم چند ارزش بالاتر اصلا بلایی بالاتر حسابداری خیلی ساریم